سلام در این نسخه صوتی من روایتگر مقاله آخرین روزهای ساتوشی نوشته پیتریزو هستم که در تاریخ 26 آوریل سال 2021 به مناسبت دهمین ده سالگرد ناپدید شدن ساتوشی ناکاموتو منتشر شده بعد از آشنایی با بیت کوین و در مواجهه با شخصیت پر رمز و راز ساتوشی ناکاموتو و دلایل محتمل او برای ترک پروژه سوالهایی در ذهن افراد به وجود میاد سوالهایی که پاسخ دادن به اونها کار ساده ای نیست پیتریزو در این مقاله داستان ناپدید شدن ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین در تاریخ 26 آوریل سال 2011 میلادی رو تعریف میکنه و به بررسی دلایل اون میپردازه این مقاله توسط مترجمین ناشناس ترجمه و در اختیار سایت منابع فارسی بیتکوین قرار گرفته و بازبینی ویراست اول و صفحه بندی این کار هم توسط سایت منابع فارسی بیتکوین به آدرس bitcoind.me صورت گرفته همچنین میتونید من رو با چپ دست در توییتر هم دنبال کنید قراران است که در سلسله پادشاهان وقفه‌ای نیفتد. تری پرچت مقدمه حدس می‌زدند که او یک بریتانیایی است یا یک یاکوزا. میگفتند او پولشویی کرده. حدس میزدند او زن است یا حداقل مدعی بودند که اینطور است. با او شوخی میکردند که ترتیبش را خواهند داد. خود را برای کارهای پیشبینی نشده او آماده میکردند. حتی الگوی خواب او را نیز زیر نظر داشتند. درباره حرف زدن یا نزدن او بحث می‌کردند و افزونه های برطرف کننده اشکالات نرم‌افزاری را با پیام خیلی لطف میکنید برای او ارسال می‌کردند. ساتوشی ناکاموتو در روزهای پایانی سال 2010 همچنان به عنوان خالق بیتکوین و کسی که ارزش بازار اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز جهان را به یک میلیون دلار رسانده شناخته می‌شد و مورد احترام بود. اما با بالا گرفتن نارضایتی ها از اعمال قدرت و دسترسی دشوار به او نکوهش ساتوشی مدیر ساتوشی گلوگاه پروژه و ساتوشی دیکتاتور بسیار متداول شده بود میتوان گفت سر آرامی که داشت آرام آرام از تابستان بر علیه خالق بیت کوین بالا میگرفت خیلی زود به یک اعتراض تمام عار تبدیل شد همینطور که مطالبات افزایش پیدا میکرد دسترسی به ساتوشی هم دشوارتر میشد. تا جایی که کاربران در مورد زمانها و دلایلی که ممکن است باعث حضور ساتوشی در تالار گفتگوی آنلاین شود بحث و گفتگو میکرد. البته ساتوشی در زمانهایی که حضور داشت هم قادر به برقراری نزد بر بحث و گفتگوها نبود. در واقع با نزدیک شدن به زمستان سال 2010 تغییر محسوسی در لحن صحبت ها پدید آمد و مطالب زیادی نوشته شدند که باعث ایجاد تردید نسبت به پروژه و به طور خاص نسبت به نقش ساتوشی، در گرداندن آن پروژه می شدن. در پاسخ کاربران موضوع خود را کاملا مشخص می کردن. از نظر آنها قدرت نهایی در دست کاربرانی بود که نرمافزار را اجرا می نه که در آن زمان سکاندار توسعه پروژه بود فردی با نام کاربری Shadow of Harbinger نوشت بر یک پروژه اوپن سورس مغز متفکر نداریم بلکه شرایط چبیه است که هر یک از افراد یکی از سلول آن است. اگر روزی ساتوشی به ما بگوید خب را فقط پروژه کوین فقط یک شوخی بوده و من میخواهم درش را تخته کنم ما بدون هیچ دردسری سری را فورک خواهیم کرد. این موضع مشخص وش مشترک طیف گسترده از افراد حتی فعالترین دستیار ساتوشی یعنی گوین اندریسن بود که نظر خود را اینگونه شفاف بیان کرد. اگر ساتوشی سرکشی کند پروژه را فورک میکنیم. در مرکز این موزه یک اعتقاد پویا وجود داشت. شاید حتی قویتر از اعتمادی که نسبت به شخص ساتوشی بود. مبنی بر اینکه هیچ یک از کاربران بیت کوین بر دیگری ارجحیتی ندارند. همه ی آنها یکی از نتایشهای شبکه هستند. افرادی که نرمافزار را توسعه می دهند و کسان دیگری که موجب موفقیت این نرمافزار می شود. با وجود این، در طی هفتههای پیش رو کاربران اولیه کوین این قدرت را به گونهای بكار بستند که موجب ایجاد اختلال در فرضیات مربوط به کاربرد نرمافزار سیاستها محدودیتها و آزادیها شد در پایان این بیداری نتیجه متعالیتری در پیداش و موجب شد اقتدار خالق کوین و نظام قوانینی که توسط او تهیه شده بود مورد چالش قرار گیرد نظام قوانینی که قاطعیت پایه‌هایش به آن تقدسی خاص میبخشید فردی با نام کاربری ترش هاولیک در پاسخ به یکی از منتقدان اولیه چنین نوشت. پس شما با قوانین طبیعی که مقادیر طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم در جهان را تعیین می‌کند مشکلی ندارید. اگر بخواهید می‌توانید نام این قوانین را خدا بگذارید. دقیقاً همین موضوع در مورد ساتوشی صادق است. محسومیت. از نظر ساتوشی شرایط با روزهای سوتوکو سال 2009 تفاوت زیادی داشت ماها پس از انتشار اولین نسخه نرمافزار بیتکوین حتی اگر کسی در مورد آن نظری داشت بسیار بی صدا آن را بیان می کرد. با نزدیک شدن به پایان سال خوشبینی موجود در ایمیل های اولیه او با حلفینی هم کم کم در حال فراموشی بود در شرایطی که پاسخ به مطالب منتشر شده در گروه ایمیلی بیت کوین کاهش چشپری یافته بود و تقریبا به صفر رسیده بود اما گواه اطمینان ساتوشی از پشتوانه علمی بیت و تبیین مزایای آن به عنوان یک پول شاید اضافه شدن قابلیت تالارهای گفتگو به وبسایت رسمی بیتکوین است این کار او ثابت میکند که او به اهمیت تبلیغات برای اختلاع خود پی برده و جدی تر به آن اندیشیده است مطمئنم میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که انجامن های گفتگوه سایت بیتکوین.org که در نوامبر سال 2009 آغاز کار کرد برای شکستن سکوت در پروژه ناشناخته او کار آمد بود. پروژه ای که بعد از گذشته یک سال فقط کمی بیشتر از دویز تراکنش را پردازش کرده بود و نرخ تبدیلی هم نداشت. کسی که تا این حال روی پروژه بیتکوین وقت و انرژی می گذاشت فردی به نام مارتی سیریوس مالمی دانشجوی علوم کامپیوتر بود که اوقات فراغات خود را به رفع اشکالات نرمافزاری اختصاص می‌داد. ولی انجامن های گفتگو این تیم دو نفره را گسترش دادند. وقتی سوالی مطرح شده بود که قیمت بیتکوین چقدر باید باشد فردی با نام کاربری نیو لیبرتی استاندارد اولین جواب موسیک را می دهد. کمتر از پنجاه کاسه کاغذی هاکبه کاربران انجامن گفتگو با همکاری یکدیگر پاسخهای بهتری ارائه می‌کردند. اولین معامله با بیت کوین را انجام دادند و فروشگاهها را به پذیرش بیت کوین ترغیب می‌کردند. ساتوشی از طریق فضای مجازی همه این اتفاقات را زیر نظر داشت. دهنده اصلی و دستیار پاره وقت او در طول سال اول نزدیک به پنجاه مرتبه کد را به روز رسانی کردند. کاربران اغلب نرمافزار خود را در فواصل زمانی کوتاه و بیمعتلی به روز رسانی می و در مسیری که به سمت ناشناخته ها برمی بی اعتمادی جایی نداشت. قطر قطره اینکه ساتوشی درباره بازدید کنندگان اولیه سایت bitcoin.org چه فکری می کرد را می توانیم حدس بزنیم. اما به نظر می او اون میزبان فروتن و پاسخگویی بوده است. بیشتر این افراد اطلاعات بیشتری نسبت به خود ساتوشی از خودشان ارائه نمیدادند. بعضی از آنها نامهای کاربری ناهنجاری برای خود انتخاب کرده بودند، مثل گیک یا ریکس. برخی دیگر نامهای مستعار کسل کننده، مثل Smoke تو ماچ یا سیاسی مثل Juan Carensin را انتخاب کرده بودند، ولی هیچ یک از آنها نام شخصی خود را استفاده نکرده بود. با این حال، در وقت به ورود یک نام توجهات را به سمت خود جلب می کرد. Gavin ادریسن این نام برخلاف دیگران مثل سیریوس یا ساتوشی که تک بودن بودند، به صورت یک نام کامل قابل تشخیص بود. اسم کوچک آن یعنی گوین کمی غیرعادی بود و بعد از آن هم نام خانوادگی او آمده بود. عکس پروفایلی که او برای خودش انتخاب کرده بود، به تفاوت او با دیگران می افزود. در حالی که اغلب عکس های دیگر کاربران چیزی بیشتر از یک مربع خاکستری خالی نبود. عکس پروفایل اندرسن چهره یک کهنور و مسیر پشت سر او را نشان می‌داد. عکس جالبی بود. تا ماه می سال 2010 بیت کوین راه کوتاهی را طی کرده بود و جذب اندرسن و افرادی که با فرهنگ استارتاپی سیلیکون ولی متعلق بودند، عاملی برای معرفی شدن متواضعانه بیتکوین در صفحات مجله اینفوورد بود. اما برای جلب توجه افرادی که در انجمن‌های گفتگوی سایت بیش از پیش مشغول بودند چیزی فراتر از یک اسم و فامیل نیاز بود و اولین تلاش اندریسن در اوایل ماه جوان او را با موفقیت به این هدف رساند. او در یک اطلاعیه اینطور نوشت برای اولین پروژه بیت کوینی خودم تصمیم گرفتم کاری کنم که خیلی احمقانه به نظر می‌رسد یک وبسایت درست کردم که بیت کوین می‌دهد برای شروع در آن 1100 بیت کوین قرار دادم چرا چون میخواهم پروژه بیتکوین کوین موفق شود این وبسایت که بیت فاسد نام گرفته بود مورد تحسین قرار گرفت و توجه مشارکت کنندگان اولیه پروژه مثل لازلو را به خود جلب کرد و به سرعت داشت مانتر از رویداد خرید دو عدد پیتزا با بیتکوین کوین شد کاری که این وبسایت انجام میداد فراتر از یک مبادله ساده بود چون او از قوه تخیل خود استفاده کرده بود امریکه می توانست توانایی های بالقوه بیت کوین در معاملات آنلاین را به واقعیت تبدیل کند. در حالی که پول سنتی در حسابها جا خوش کرده بودند و جابجایی آنها بین بانک ها روزها طول میکشید پرداخت های بیت کوین آزادانه در این سایت برای کاربران در جریان بودند در عرض یک هفته شخص ساتوشی به این حرکت عکس نشان داد و آن را یک انتخاب عالی برای پروژه اول او خواند او نوشت من برنامه داشتم اگر کسی چنین چیزی را نساخت خودم آن را انجام دهم که وقتی تولید پنجاه بیتکوین به عنوان پاداش تولید بلاک برای افراد خیلی سخت شد بتوانیم به کاربران جدید چند عدد بیتکوین بدهیم تا بتوانم با سرعت با آنها کار کنند. این پاسخ ساتوشی کافی بود تا اندریسن را ترقیب به جواب دادن به او کند اگرچه لحن او تفاوت میان او و ساتوشی را به روشنی بربلا می کند. اندریسن نوشت خیلی مشتاقم از شما بیشتر بدانم. چند سال دارید؟ آیا ساتوشی نام اصلی شماست آیا شغل ثابت دارید؟ قبلا روی چه پروژه هایی کار کرده اید ؟ گذشته از این حرفا بیت کوین یک فکر بکر است و من قصد و کمک دارم شما به چه چیزی نیاز دارید؟ اینکه نام اندرسن تاریخچه پیچیده خود را داشت یا اینکه او قبلا با نام گوین الکساندر بل شناخته می شد در آن زمان برای کسی مهم نبود. همچنین؟ اینکه زندگی او ممکن است تحت تاثیر یک مخترع بزرگ دیگر قرار گیرد. انتشار مقاله در سایت اسلش دات هر بیت کوین در اواخر جوان تقریبا یک بنی معادل یک دلار ارزش داشت و تعداد تراکنش های روزانه شبکه آن دو شده بود و به نظر می در حال رونق گرفتن است. جو های گفتگو داغ بودند تعداد برنامه نویسان آن هم افزایش می و انتشار نرم افزار بیت به یک کار گروهی تبدیل شده بود. تولی نکشید که حتی خود ساتوشی هم دچار خوشبینی شده بود و با توجه به اینکه لازلو، گوین و دسته کوچکی از برنامه نویسان فال نرم افزاری خروجی او را تست می کردن. اعتماد به نفس او به قدری بالا رفت که یکباره اعلام کرد ممکن است پروژه بیت از حالت آزمایشی یا بهتا خارج شود. در شرایطی که بیشتر افراد کودی بیتکوین را شخصا کامپایل میکردند، ایده انتشار نسخه ورژن یک خبر بسیار مهمی بود. باید سعی کنیم تبلیغاتی را به صورت همزمان در انجمن‌های گفتگو، یوتوب، فیسبوک، آی و بخش تبلیغات گوگل انجام دهیم. شاید سایت اسلش دات با توجه به میلیون‌ها مخاطب علاقه من به تکنولوژی بهترین گزینه باشد. سیریوز این پیام را نوشت و دیگران هم در جواب آن پاسخهای پرهیجانی دادند. اندکی نگذشت که افراد در انجمن‌ها بر سر نکات ریز این بیانیه ای مطبوعاتی با یکدیگر گفتگو می‌کردند. بحث بر سر این بود که آیا واقعاً پشتوانه بیت کوین انرژی است یا اصلاً ارزه محدوده آن برای کسی اهمیت دارد. اینکه این تلاشا علارغم عوض شدن نظر ساتوشی و انتشار نرمافزار بیت کوین بدون شماره یک در نسخه آن ادامه یافت نشان داد که بیت کوین همانطور که باید یک پروژه جمعی است. هرچه بود پیشگوی ساتوشی مبنی بر نیاز به محافظه کاری ثابت شد چیزی نگذشت که پس از معرفی شدن در سایت داد زیر های بیت کوین به شدت تحت فشار قرار گرفت قیمت هر کوین به 10 سنت رسید و با توجه به اضافه شدن دستگاه های استخراج سختی شبکه 4 برابر شد این شرایط موجب شد چیادانی مثل ویلیام ننولود پیتکاک برای علم و سرگرمی زیرساختهای اقتصادی بیت کوین را تحت فشار قرار دهند او در توییتی نوشت صرافی بیت کوین اکسچنج فرو ریخت 84732 بیت کوین با 1500 یورو سود فروخته شد ها ها ها ها, ها. در حالی که موجی از ترس انجمن‌های گفتگو را فرا گرفته بود گمان گمانهایی وجود داشت که احتمالا شبکه بیت مورد حمله بانکداران کینتوز یا اپراتورهای پس فترت مزارع سرورها قرار گرفته است. با این همه هیجانی که در بازار بود، فقط به کمی زمان نیاز بود تا بازار سرانجام از هم بپاشد و قیمت بیت به 5 سنت برسد. وبسایت فاسد که روزی پر از بیت بود، اکنون خالی شده و پرداختهایش کاهش پیدا کرده بود. یک بلاک عجیب و غریب. هر موج قیمتی جدید کاربران جدیدی را به ساحل بیتکوین می آورد. بنابراین با وجودی که کوتاه‌های اندرسن در فواصل زمانی کوتاه توسط ساتوشی در پروژه ادغام می شدن، او تنها فردی نبود که در توسعه پروژه مشارکت می کرد. مطمئناً هیچ مانعی برای مشارکت کنندگان مشتاق وجود نداشت. ایمیل ساتوشی روی صفحه اصلی سایت بیتکوین.org قرار داشت. و نام او که تقریبا بیرون از انجمنهای گفتگو به گوش کسی نخورده بود در آن زمان پرآوازه نبود. تیاگو فاریا به خاطر می آورد که نسخه ای از ترجمه وبسایت را در طول یک سفر هوایی به لیسبون آماده و برای ساتوشی ارسال کرده و پس از پایان سفر هواییش از طرف ساتوشی پیام تشکر گرمی دریافت کرده است. وقتی ریباگ در حین کامپایل کردن کد به مشکل برمیخورد ساتوشی پیشنهاد دریافت جایزه در ازای حل این مشکل را رد میکند و در جواب او میگوید من بیت زیادی دارم. همینطور دیوید پریش صرفا پس از ابراز علاقه به یادگیری برنامه نویسی در لیست مشارکت کنندگان پروژه قرار میگیرد خلاصه اینکه کار کردن روی پرتکل بیت آنچنان هم افتخارآمیز نبود. هر کسی که توانایی مشارکت داشت به سادگی به آن اضافه میشد. و هر وقت هم که میخواست آن را ترک میکرد. مثل لازلو که تا ماه اوت کم پیدا شده بود و بعد از آن هم به کلی غیبش زد و فقط کسانی که هدفی را دنبال میکردند در پروژه باقی می‌ماندند انجرسن مشغول ساخت یک پروژه فوق سری بود و میخواست دوباره یک سایت این بار با اهداف تجاری ایجاد کند او در حال ترک کار پاره وقت برنامه نویسی خود بود و امیدوار بود بیت کوین در این مسیر به او کمک کند تشخیص اینکه مخترع بیت کوین در اون گراست یا وقت سرخاراندن ندارد برای دیگران دشوار بود چون او اطلاعاتی از شرایط حال یا گذشته خود ارائه نمیداد. با وجود این ابهامات در مورد ساتوشی داشت به همراه تابستان سال 2010 به پایان می رسید. شاید بتوان گفت کدی که ساتوشی مینوشت جادویی بود. بنابراین احترام زیادی برای ساتوشی جادوگر کیمیاگری که سی پلاس پلاس را به سنگ جادو تبدیل کرده بود وجود داشت. اولین شکاف در این تصویر معصومانه در تاریخ 15 اوت سال 2010 ایجاد شد وقتی که به طور ناگهانی 184 میلیارد بیت روی بلاکچین ظاهر شد این رویداد یک اشکال کوچک نبود بلکه سیاست پولی بیت کوین را کلا نقض کرد موضوعی که تا آن زمان سابقه نداشت در این حادثه یک فرد خرابکار توانست با تغییر نرمافزار بیتکوین سیستم پیچیده حسابداری توضیح شده شبکه را با موفقیت مختل کند. همانطور که کاربران زده خبر این واقعه را در انجام‌نواهای گفتگو پخش می‌کردند. اندریسن و دیگر توسعه دهندگان بیتکوین در پی یافتن یک راه حل برای آن بودند. با وجود این همچنان خود ساتوشی بود که مشکل را رفت و نسخه جدید را برای استفاده کاربران آماده کرد. این حادثه یادآور این نکته بود که نرمافزار بیت کوین تا چه اندازه به تنها مسئول نگهداری خود یعنی ساتوشی وابسته شده است. این موضوع کاربران را بیشتر از بازیگران دیگر تحت تأثیر قرار داد. تا جایی که یکی از کاربران نوشت: شانس آوردیم یا ساتوشی از راههای محرمانه در جریان وقایع اسراری قرار می‌گیرد. در طول هفتههای بعد بیتکوین به کار خود ادامه می‌داد و کاربران قادر بودند با اجرای آن از ارزش دارایشان محافظت کنند. همچنین می‌توانستان اعتبار تراکنش‌های شبکه را بررسی و به ساختن بلاک های جدید روی زنجیره بلاکچین ادامه دهند. از این نظر واقعی که رخ داده بود از خاطره محو شده بود. اما اگر بپذیریم که این حمله در نقض قوانین شبکه بیت کوین موفق بوده همچنین می توانیم ادعا کنیم که این حمله برای اولین بار توجه ها را به قوانین شبکه بیتکوین و سازوکار مدیریت آن جلب کرد و آن را در معرض دیده همگان قرار داد. در پی آن ساتوشی سریعا دست به کار و به تقویت کد نرمافزاری بیتکوین کوین مشغول شد. بخشهایی از آن را به شکلی حذ یا به آن اضافه می کرد که گویی خود را برای روبرو شدن با یک طوفان آماده می کند. او برای از بین بردن راه‌هایی که ممکن بود برای حمله به بیتکوین مورد استفاده قرار گیرد کارهایی کرد. دستوراتی که ایجاد تراکنشهای پیچیده را ممکن می‌کرد، غیرفعال کرد. غیر فعال کرد. هایی را به منظور ایجاد نقاط کنترلی در کد نرم‌افزار درج کرد. یک سیستم هوشدار در نرم‌افزار بیتکوین پیاده سازی کرد که او را قادر می‌ساخت در شرایط اضطراری هشدارهایی برای همه کاربران ارسال کند. اقدامهای او از برخی جهات قابل درک بود، بیتکوین کوین بیسر و صدا تحت محاصره خرابکاران قرار گرفته بود و تنها کسی که این شرایط را تشخیص میداد شخص او بود. در جولای سال 2010 کاربران به طور جدی شروع به کاوش در ک کردند و با وجود آنکه بیشتر آنها اشکالات نرمافزاری پیدا شده را به وی گزارش میکردند هیچ تضمینی نبود که اینها کار خیرخانه از طرفشان ادامه دهند. اقدامهای ساتوشی نشان میداد که همه قوانین بیتکوین در نظر او با یکدیگر برابر نیستند. ماهیت قوانین اجماع به قوت خود باقی بود و همه کاربران باید در مورد تمام قوانین مربوط به بلاک های معتبر با یکدیگر به توافق می رسیدند. ولی از نظر او قوانین مربوط به ختمش و سیاست گذاری بیت از این محدوده خارج بود و این موضوع برای وی آزادی عملی ایجاد میکرد تا به قصد ایجاد امنیت. قوانین مورد نظر خود را روی تراکنش ها اعمال کند مثلا کارمز یک تراکنش باید چقدر باشد؟ آیا باید بر روی الگوهای تراکنش تراکنش محدودیتهایی اعمال کرد؟ آیا می توان یک تراکنش را برای شبکه بیت کوین ناخواسته، نامطلوب یا حتی مزر دانست؟ ساتوشی در مواجهه با این سوالات مشارکت کمتری از خود نشان میداد و در مورد دلایل تصمیمهایش توضیحات شفافی ارائه نمی کرد. موضوعی که مسئله را حتی تر می می‌کرد این بود که او در تغییر ویژگی‌های بیت کوین به بهانه مورد پذیرش قرار گرفتن آن، حداقل به صورت ضمنی، شفاف و سریح بود. از همان سال 2009، ساتوشی دسترسی به سایت bitcoin.org را به سیریوس داده بود و او در تعطیلات میان ترم زبان کشورهای مختلف و یک قسمت پرسش و پاسخ را به آن اضافه می‌کرد. علاوه بر اینها یک بخش جدید با نام مزایای پروژه هم به آن اضافه شده بود. در این بخش جدید در وبسایت آمده بود تراکنش های بیت کوین عملا رایگان هستند در حالی که کارت های اعتباری و سیستم های پرداخت آنلاین به طور معمول بین یک تا 5 درصد تراکنش و علاوه کارمزد های بسیار گران را هزینه می کنند. شاید جای تعجب نباشد که اقتدار ساتوشی برای اولین بار در اینجا جایی که پول جادویی اینترنت با هزینه های دنیای واقعی برخورد می‌کند، مورد سوال قرار می‌گیرد. میان تصمیمات او و چیزهایی که ممکن است دهندگان و کاربران بخواهند، مرزی به وجود می‌آید. متولی پروژه. اشکالی که توانست با موفقیت سیاست پولی بیت را نقض کند، که همان خلق 184 میلیارد بیت در یک بلاک بود. در نهایت توانست به مدت پنج ساعت در زنجیره بلاک های بیت کوین شکاف ایجاد کند و قبل از اینکه کاربران نسخه جدید نرمافزار را نصب و قوانین شبکه را بازیابی کنند موجب سرگردان شدن و سه بلاک در زنجیره بیت کوین شد اگر این اتفاق امروز رخ میداد شاید مجبور میشدیم با کلی اما و اگر به اجرای چنین روشی متوسثر شویم ولی در آن زمان شرایط متفاوت بود و این واقعه را جشن می گرفتن. یکی از طرفداران اولیه بیتکوین تا آنجا پیشرفت که در وبلاگ خود ابراز مباهات می کرد که اشکال پیش آمده در بیتکوین حتی از اشکالات نرمافزاری شرکت های گوگل و ماکروسافت هم سریعتر رفت شده است تعجب آورتر این بود که ساتوشی در این مورد صحبتی نمیکرد ب غیر از اختاری که در لیست ایمیل منتشر شد این موضوع هیچ وقت مورد کال چ چکافی و بررسی دقیق قرار نگرفت. علاوه بر ماهیت این اشکال نرمافزاری موارد دیگری مثل روشی که ساتوشی به منظور محدود تر کردن قوانینی که همه کاربرها روی شبکه اعمال می‌کردند به کار برده بود یا وصله نرمافزاری که برای محدود کردن ورودی ها و خروجی های یک تراکنش ایجاد شده بود هم هیچگاه مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. حتی اگر توسعه دهندگان در مورد آنچه اتفاق افتاده بود سوالی داشتند، دقیقا مشخص نبود باید چگونه پرسیده شود. قرار بر این بود که جلسه در تابستان با حضور توسعه دهندگان برگزار شود ولی عملا در قیاب ساتوشی منتفی شد. منصفانه این است که بگوییم مشخص نیست که آیا ساتوشی اصلا مایل به دانستن نظر دیگران بوده است یا نه؟ یک هفته قبل از این واقعه، او بیسر صدا قوانین مربوط به سایز بلاک را محدودتر کرده بود. او یک پروتکل مبهم معروف به ماکس بلاک سایز را به سازی و به عنوان بخشی از بروزرسانی معمول نرم به پروژه اضافه کرد. این اتفاق دوباره در اواخر ژوئیه، یعنی زمانی که ساتوشی بخشی از یک کد بازبینی نشده را در پروژه ادغام و یک نسخه جدید از نرم افزار را با پیام لطفاً هرچه سریعتر سریع‌تر نسخه 0.36 را نصب کنید منتشر کرد. نه اینکه او دلیل قانع کننده برای اعمال این تغییرات نداشته باشد، بلکه به نظر می نسد این کار را برای رفع یک مشکل نرم انجام داده است. مشکلی که اگر رفع نمی شد به یک مهاجم اجازه می داد بیت کوین های دیگران را به سرقت ببرد. ولی این فاصله بین ساتوشی و دیگر توسعه دهندگان پروژه پیامدهای خود را داشت. به عنوان مثال گوین اندریسن شروع به مطرح کردن چند و چون روند توسعه بیت کوین با جف گارزیک از مشارکت کنندگان قدیمی لینوکس و کسی که از طریق مقاله سایت داد به پروژه بیت کوین علاقه شده بود و قصد داشت به بررسی کد بیت کوین بپردازد کرد جای تعجب نیست که این دو نفر اشتراکات زیادی با یکدیگر پیدا کردند. گارزیک هم تازه پدر شده بود و از قبل در استار فعالیت میکرد و ساکن هومه رالی از کارولینای شمالی بود او در یک کاروان فلیتود مدل 1980 زندگی و کار میکرد در IRC مشاهده میکنیم که یک دوستی کاری بین این دو به وجود آمده است گوین اندریسن کاش میتوانستم ساتوشی را راضی کنم که مدل بیت بیتکوین را به گونه ای تغییر دهد که همکاری بیشتر ایجاد شود تریتونیو منظورت چیست؟ مگر مدل توسعه فعلی ایرادش چیست؟ جف گارزیک عمدتا بسته، متن باز ولی توسعه بسته گوین اندریسن متولی پروژه در حال حاضر ساتوشی است و همه کتا از کانال او میگذرد و این جالب نیست یک نشته بی سر و صدا. با رسیدن به فصل پاییز، به نظر می رسید کاربران و دهندگان حالا به هر دلیلی مسائل مربوط به اختیارات مطلق ساتوشی را راحتتر به چالش می گارزیک کمی تندروتر از بقیه بود و سوالات دشواری در مورد مسائل مربوط به اقتصاد سیستمی در انجامنهاي گفتگو مطرح می کرد. او در ابتدا به بررسی سیاست کارمزد تراکنش بیت کوین پرداخت. و پیشنهاد کرد کارمز تراکنش با این فرض که میتواند آن را به عنوان یک خزینه ذخیره سازی پنهان در نظر گرفت حذف شود. ساتوشی کارمز تراکنش را حذف نکرد و به تشریح آستانه فعلی کارمز پرداخت. و توضیح داد که چرا از حجم پایین تر از 50 کیلوبایتی پشتیبانی می کند. او معتقد بود بیت کوین باید اجازه انجام حداقل چند تراکنش رایگان را در شبکه بدهد. با وجود مخالفت‌هایی که دیگران با او داشتند ساتوشی برای اعمال تغییرات مورد نظر خود به سرعت وارد عمل شد و فقط دو هفته طول کشید تا کوتاهی این بخش را در پروژه ادغام کند. از این طرف به نظر می‌رسید برخی از کاربران به دلیل افزایش یافتن موثر مؤثر قور می‌زدند و استدلال می‌کردند که کارمزد باید توسط بازار تعیین شود، نه برنامه نویسان پروژه. در پی این تغییرات توسعه دهندگانی مانند اندرسن گیت شده بودند و نمیدانستند کارمز چگونه در شبکه تعیین می شود. بنابراین نمی توانستند در پاسخ به سوالاتی که پیش میآمد کمکی کنند. این یک مشکل بود چون هر شبکه بزرگتر می شد احتمال منتقل کردن مشکلات به ساتوشی هم کمتر میشد. در آن زمان وصله های نرم افزاری که افراد مختلف تهیه میکرد، مست غیر رسمی نرم بیت که اشکالات نرم کوچک را رفت می کردند یا عملکرد کد مربوط به بخش استخراج بیت کوین افزایش میدادند بین کاربران دست به دست می شد ساتوشی به نوبه خود به این مسائل واقف شده بود و تا ماه اکتبر دسترسی مستقیم ارتقای نرم را به اندرسن داد. اندریسن برای افزایش مشارکت کاربران از IRC، به عنوان یک ابزار جدید استفاده می کرد. حتی در شرایطی که ساتوشی تایید کننده نهایی بود. هرچند سوالات مهمتر همچنان به حکم نهایی ساتوشی نیاز داشت. وقتی که جف گارزیک پیشنهاد افزایش سایز بلاک و وصله نرمافزاری آن را ارائه کرد تا ظرفیت پردازش شبکه بیتکوین به ظرفیت شبکه پیپل برسد، ساتوشی دوباره موضوع را به تعویق انداخت و تکید کرد که این تغییر، اگر در آینده مورد نیاز باشد انجام خواهد شد. اینکه امروز این پاسخ ناقص به نظر میرسد به این دلیل است که به نظر میرسد گارزیک به صورت منفعلانه میخواست بداند عکس عمل توسعه دهندگان در مواجهه با تغییرات ناسازگار با پروتکل فعلی یعنی تغییراتی که قوانین را محدودتر نمی کنن، بلکه قوانین جدیدی به نرم افزار معرفی یا حتی اضافه می کنند. احیاناً به چه شکل است؟ در واقع گارزیک کنجکاف بود بداند اکسل عمل دیگر توسه دهندگان در مقابله با نرمافزاری که منجر به هارد فورک می شود چیست؟ حتی در آن زمان هم کسانی مثل ولادیمیر وندرلام بودند لام بودن که این روش حل و فصل مسائل و تصمیم گیری توسط ساتوشی یا هر دیکتاتور خیرخواه دیگری را برای آنها غیرعادی عادی می کرد او که به تازگی به پروژه پیوسته بود، اعتقاد داشت این موزه میتواند این پروژه را در مسیر خطرناکی به سمت تمرکز پیش ببرد. ولادیمیر در جایی میگوید توسعه دهندگان باید به تنظیم قوانین پروتکل مشغول باشند، نه تعیین کارمزد تراکنش یا در جایی دیگر میگوید در غیر این صورت باید آقای ساتوشی را رهبر عزیز صدا کنیم. سه مقابله به نظر میرسید ساتوشی صرف نظر از انتقاد انتقادها همچنان فعال و آنلاین است اما حتی او هم با توجه به حجم بالای گفتگوها قادر نبود به همه آنها رسیدگی کند تا ماه نوام به نظر میرسید کاربران در حال به چالش کشیدن خط قرمزهای تعیین شده توسط ساتوشی هستند برخی مدعی بودند که طراحی او ایراد دارد برخی دیگر پا را فراتر گذاشتند و استدلال میکردند که او این سیستم را برای ثروتمند کردن خود به وجود آورده است هرچند این منطق قدیمی است و برداشت غلطی از آن شده است ولی به هر حال نشان اوضاع آن زمان است و دو نوع نگرانی را افشا می کند. اول اینکه ممکن بود تغییراتی که توسعه دهندگان در سیستم ایجاد می کنند به سرمایه گذاران یا همان کاربران آسیب برساند و دوم اینکه اختیار تام این سیستم در اختیار کاربران است. جای تعجب نیست که بیشتر این حملات متوجه قوانین قراردادی تعیین شده توسط ساتوشی میشد و در این میان بیشترین فشار بر روی قانون سقف عرضه 21 میلیونی بیتکوین وارد بود. مسیس چطور میتوانید بپذیرید که یک فرد از راه برسد و مقدار سقف در گردش یک پول را تعیین کند؟ کیبا پس چه کسی این کار را انجام دهد؟ تراشاولیک من به یک نفر که از راه رسیده بیشتر از برناکی که همان رئیس وقت اداره خزانداری آمریکا است اعتماد دارم مسیس: انتخاب چند نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدن بهتر از یک نفر است آرت فورس تنها چیزی که اهمیت دارد این است که این مقدار ثابت است و از طریق در مفزار بر روی شبکه اعمال می شود و همه از قبل از آن اطلاع دارند. اینجا نقطه‌ای بود که کاربران با یکدیگر متحد شدند و دریافتند اگر روزی بین آنها و ساتوشی و یا هر توسعه دهنده دیگری اختلاف نظری پیش بیاید میتوانند نسخه خود را کپی کنند و به راه خود ادامه دهند و روی بیتکوین اعمال قدرت کنند میتوان مایکل تیموس مارکوارت را که انجمنهای گفتگوی ایجاد شده بعد از سایت bitcoin.org را مدیریت میکرد اولین فردی دانست که این ایده را با صدای بلند مطرح کرد وقتی ساتوشی یک نسخه جدید از نرمافزار بیتکوین را آماده و منتشر کرد، استدلال می کرد که ساتوشی تغییرات در نسخه جدید را پیشنهاد کرده است و کاربران باید این تغییرات را شخصا بعد از دانلود کد، بازبینی و تایید کنند. البته این مسئله‌ای بود که به سیاست گذاری در موضوع نرمافزار مربوط بود و ارتباطی به قوانین اجماع نداشت. سیاستگزاری در مورد تغییراتی که باید در نرمافزار ایجاد شود تا کاربران بتوانند راحت‌تر از آن استفاده کنند، اما به سرعت برای همگان مشخص شد که چقدر این موضوع به سلیقه افراد بستگی دارد. تا جایی که افراد در مورد معنی دقیق واحد مایکرو و اینکه آیا پدر و مادرشان از مفهوم میلی سردر میآورند یا نه بحث‌های طولانی کردند. فردی با نام ماتیو آپاموت و ویلیس در یکی از زیرگروه‌های های گفتگو در حال بست ایده بیت کوین بود و برای اولین بار شرایط را بررسی می کرد که در آن چند بلاکچین به طور همزمان در کنار هم وجود داشته باشند آیا راه درست توسعه بیت کوین به صورت لایه‌ای است یا باید دوباره آن را روی یک بلاکچین جدید و با هدف ایجاد هزاران کوین جدید از نو طراحی کرد این موضوع به سرعت داغ شد و کاربران برای جلب توجه ساتوشی جنجال به کردند آنها نمیدانستند اول زنجیره بیت کوین را فور کنند یا قبل از آن از ساتوشی اجازه بگیرند. ساتوشی وقتی نظر خود را اظهار کرد که این گفتگو و بحث دوازده صفحه پیش رفته بود. او گفت: من فکر می کنم بیت دی ان اس می میتواند یک شبکه و زنجیره جداگانه باشد اما در عین حال توان پردازشی CPUپیو را با بیت کوین به اشتراک بگذارد. شما چرا نباید در حین تولید بیت کوین و برای کاری که انجام می دهید دامنه رایگان هم به دست بیاورید. این گفتگو به قدری مهم شده بود که هلفینی دوباره به با آن بازگشت و بیپرده نظر ساتوشی را پرسید که آیا او از ایده بلاکچین های مختلف که هر کدام کوین مخصوص خود را دارند پشتیبانی میکند یا خیر. تجزیه و تحلیل ایده های موجود سالها به طول خواهد انجامید و بدون شک همچنان ادامه دارد. اما کاملا واضح است که در آن زمان هم مخالفت های با ایده زنجیره های جانبی ساتوشی وجود داشت. موضوع روشن دیگر این بود که حتی خود ساتوشی هم احتمالاً نمیدانسته انقلابی که شروع کرده به کجا خواهد رسید. کاربری با نام آرهورنینگ نوشت: فیلی که در اتاق است، موضوعی که همه می‌خواهند از آن اجتناب کنم و بیان نمیشود. این است که باید ارزهای مجازی در کنار بیت ایجاد شود چون بیت برای انجام کارهایی که باید انجام شود کافی نیست. گارزیک با صراحت معتقد بود بیت فقط باید یک پول باشد. ولی با این حال از ایده ایجاد بلاکچین های جدیدی که خارج از قدرت ساتوشی هستند حمایت می کرد. او نوشت: بر ترس خود از فورک کردن پروژه غلبه کنید و وجود چندین بلاکچین مختلف با قوانین مختلف و در رقابت با یکدیگر را بپذیرید. بگذارید ساتوشی دیکتاتور خیرخواه زنجیره اصلی بیتکوین بماند. ما به رقابت نیاز داریم. غیر قابل تغییر چند روز بعد ساتوشی دوباره برای جلوگیری از بکار گرفته شدن دستورات پیشرفته تغییراتی در پروتکل بیت کوین به وجود آورد و نام این قوانین جدید را ایز استاندارد گذاشت. ساتوشی و اندریسن این تغییرات را با عنوان روشی برای جلوگیری از مشکلات امنیتی احتمالی که قبلا در نظر گرفته نشده بودند، به دیگران معرفی می‌کردند و کاربران با بروزرسانی نرم‌افزار خود در واقع میپذیرفتند که فقط تراکنش هایی که از نظر توسعه دهندگان ام تلقی می میشود و الگوی آن در یک لیست از پیش تعین شده است را به شبکه بازبخش کند. برای تیموس کاملا محرز بود که این مسئله آزادی کاربران را زیر سؤال میبرد. او روی دو پروژه مشغول به کار بود، و دستورات پیشرفته که اکنون غیر استاندار تلقی می شدن در هر دو پروژه به کار گرفته شده بودند. هدف یکی از این پروژه ها تحقق یافتن بیت بود و دیگری هم پروژه بود که تصمیم داشت چیزی شبیه به کارت شارژ برای بیت کوین بسازد. قوانین جدید کامپایل کردن کد را برای توسعه دهندگان دشوار کرده بود و تیموس هم خیلی سریع یک وصله نرمافزاری تهیه کرد، که برای خونسا کردن اثر قوانین جدید طراحی شده بود روز بعد از ماینرها درخواست کرد این قوانین جدید را بر روی شبکه اعمال نکنند و برخی از آنها حمایت خود را از نرم جایگزینی که آماده شده بود اعلام کردند آنها برای استفاده از حقوق خود در ماین کردن تراکنش هایی که ممکن بود کارمزد بالاتری نصیب آنها کند از خود اشتیاق نشان می میدادند گارزیک با تب و تاب با این تلاشها مخالفت میکرد و مدعی بود تیموس و ماینرها قصد دارند در زنجیره بیتکوین شکاف به وجود آورند او معتقد بود قوانین جدید فقط سیاستهای شبکه را تنظیم میکند از طرف دیگر تیموس معتقد بود این کاربران هستند که درباره قوانین کوین تصمیم میگیرد این بازار است که در مورد بهترین سیاستهای ممکن تصمیم میگیرد و من دخالتی در این موضوع ندارم اندریسن میخواست به نوبه خود تنش‌ها را کاهش دهد و اظهار کرد که ایجاد تغییر در شبکه بیت کوین کار آسانی است به این شرط که توافق عمومی در مورد آن وجود داشته باشد. او در ادامه جواب داد: لطفاً طوری رفتار نکنید که انگار قانون مربوط به ایز استاندارد غیر قابل تغییر است. این چنین نیست و همانطور که ساتوشی هم گفت، نسخه های جدید به سرعت توسط کاربران به کار گرفته می شود. پس تعریف یک الگوی تراکنش جدید آنچنان هم کار سختی نیست. ساتوشی در پیام‌های خصوصی موافقت خود را با اندرسن اعلام و خاطر نشان کرد که هیچکس کس نمی‌تواند دیگران را از ساختن چیزی روی بیت کوین منع کند و علاوه بر این گفت که از جا انداختن این ایده پشتیبانی می‌کند. او در پاسخ نوشت اجلی در کار نیست. من دوست ندارم سیستم را بر پایه اهداف واهی طراحی کنم. شاید بهتر باشد اولین چیزی که لازم داریم را طراحی کنیم تا بعد ببینیم واقعا به چه چیزهایی نیاز داریم بازی با دم همینطور که اختلاف نظرها در مورد مسائل فنی بیشتر و بیشتر میشد موضوع جدید دیگری در های گفتگو در گرفت و بحث را به بااطلاق سیاست کشاند این بحث توسط امیر تاکی از طرفداران نرمافزار آزاد مطرح شد. او در ماه نوامبر موضوعی را مطرح کرد مبنی بر اینکه وبسایت ویکیلیکس که در آن زمان توسط شرکت پیپل و بانک های جهانی تحریم و به سیستم های مالی دسترسی نداشت و دهط فشار بود می‌تواند از بیتکوین استفاده کند. اوایل دسامبر در انجمن های گفتگو تلاشی شبیه به کاری که برای تهیه مقاله /داد، انجام میشد صورت گرفت و به نظر میرسید کاربران توانسته بودند به سرعت این ایده را به گوش متسدیان ویکیلیکس برسانند با وجود اینکه این گروه در آن زمان از پذیرش بیت کوین به عنوان راهی برای پرداخت خودداری کرد سرعت انتشار شایعات بیشتر از واقعیت ها بود و مدتی نگذشت که مجله PCسیوارد وورد در مورد این ایده پیشنهاد شده منتشر کرد. برخی معتقدند این مسئله موجب لبریز شدن کاسه سبر ساتوشی شد. اینجا بود که او فهمید اگر هویتش به عنوان مختره کوین فاش شود چه عواقبی در انتظارش خواهد بود. او نوشت کاش این اندازه توجه در زمینه های دیگری جلب می شد. مرتبط با ویکیلیکس بازی با دوم شیر بود و این شیر اکنون بیدار شده است. با وجود این، هیچ کس با موزه ساتوشی در آی‌آر‌سی موافق نبود. همچنین با گزارش های مبنی بر اینکه فردی با قفل کردن این پست در های گفتگو باعث شده کاربران قادر به نوشتن پاسخ در آن بخش نباشند. دیابلو D3. دی بله، اساساً باید ساتوشی از رهبری پروژه کنار گذاشته شود. او هم مثل دیگران به سانسور کردن متوصل می می‌شود. اگر من بخواهم با استفاده از بیت کوین به ویکیلیکس کمک مالی می کنم و دیگران هم هر غلطی میخواهند بکنند. فردای آن روز در تاریخ 13 دسامبر ساتوشی نسخه ورژن 0.319 نرم افزار را منتشر کرد. این آخرین نسخه است که توسط او آماده شده است. به نظر میرسد این حرکت خالق بیت کوین که امروز به عنوان آخرین پیام عمومی وی در نظر گرفته میشود، تاکتیکی است که او انتخاب کرده بود تا از طریق آن بتواند قائله نارضایتی کاربران از اقدام‌هایی که در جهت رفع مشکلات امنیتی نرم افزار انجام داده بود را به نشانهای ای از اینکه او احساس می‌کرده مأموریت خود را در اعمال محدودیتها با هدف محافظت از شبکه بیت کوین با موفقیت به انجام رسانده است. با وجود این نمیتوان به آسانی ادعا کرد که ساتوشی تصمیم ترک پروژه را به تنهایی گرفته و مسائل دیگری در آن دخیل نبودن. به هر حال در طول یک سال گذشته لحن کاربران در مواجهه با رهبری او تغییرات چشمگیری کرده بود. ولی میتوان گفت تصمیم او برای ترک پروژه قطعی بوده چون او نام خود را از بخش کوپیرایت پروژه بیتکوین در مخزن کد حذف کرد. سپس او وبسایت بیت بیتکوین دات را تغییر داد و نام و ایمیل دیگر توسعه دهندگان از جمله اندریسن، سیریوس، لازلو و نیلز اشنایدر را به صفحه تماس سایت اضافه کرد و اطلاعات خود را حذف کرد ما از این مرحله گذار اطلاعات زیاد اطلاعی نداریم و هرچه می دانیم از صحبتهای اندریسن است که حدود یک هفته بعد از این تغییرات ادعا کرد که قرار است مدیریت پروژه به صورت فعالتری انجام شود و ساتوشی در این راه برای او آرزوی موفقیت کرده است. در این میان انجیسن رشته کارها را به دست گرفت. سپس یک پست مبنی بر اینکه ادامه کار توسعه بیت به کمک نیاز است در های گفتگوی بیت کوین نوشت و به داوطلبان جدیدی که به پروژه پیوسته بودند توضیح داد که مسئول توسعه و پیشبرد پروژه آنها هستند. چه کسی دوست دارد به پروژه کمک کند و کاری از دستش برمیآید؟ نیازی به کسب اجازه نیست، فقط کافیست بخواهید زحمات شما دیده خواهد شد و مورد تحسین و احترام قرار خواهد گرفت. وقت آن فرار رسیده که بیت کوین را از پروژه‌ای که فقط یک برنامه نویس در توسعه آن نقش دارد به یک پروژه متن قوی تبدیل کنیم که افراد زیادی در آن مشارکت دارند. میدانست که این کار او موجب پدید آمدن تیوری های توتهه و این اتفاق هم افتاد اگرچه رویدادهای بسیاری در طول داستان بیتکوین رخ داده ولی همچنان یکی از مهمترین و عجیبترین آنها دیدار معروف گوین اندریسن با سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در جوان سال 2011 است بعد از گذشته یک دهه همچنان مسائل مختلفی از ادعای به قطر رسیدن ساتوشی ناکاموتو گرفته تا آغاز تلاش چندین ساله برای براندازی شبکه و قرار دادن آن تحت کنترل دولت به آن پیوند داده می شود. امروز این ایده که یکی از چهره های برجسته فنی بیتکون و به هر طریقی با آجانس های دولت یالات متحده در ارتباط باشد حقیقتا حکم ارتداد دارد و با اصلی ترین وظیفه او یعنی حفاظت از اولین پول دیجیتالی که در برابر اعمال قدرت دولت ها مسئولیت دارد در تضاد دست با این حال شاید دلیل اینکه این موضوع همچنان مورد گمان زنی قرار می گیرد، این است که ریشه در واقعیت دارد. نه تنها اندرسن در چنین رویدادی شرکت کرد بلکه ساتوشی تا زمانی که اندرسن دعوت او را بپذیرد همچنان در پشت صحنه بیتکوین مشغول به کار بوده است. آنچه ما میدانیم این است که به نظر می رسد در ماه ژانویه مالمی و ساتوشی از طریق ایمیل خصوصی در مورد استراتژی با یکدیگر بحث میکرد. اندریسن معتقد بود که باید رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. و با توجه به اینکه ساتوشی علاقه ای به مواجهه با رسانه‌ها نداشت، خودش داوطلب انجام این کار شده بود. اندرسن نوشت: من فکر کنم بهتر از یک تصویر واقعگرایانه از بیت کوین ارائه کنیم. این نسخه آزمایشی یک نرمافزار بسیار پیشرفته است که همچنان در حال تکمیل است و به این زودیها نخواهد توانست جایگزین پیپل یا یورو شود. در جواب ساتوشی به اندرسن گفت که او بهترین فرد برای انجام هر گونه مصاحبه است. با این حال مسئله ای که موضوع را کمی پیچیده می‌کند این است که مشخص نیست دیدگاه‌های او زمانی که در کانون توجهات قرار گرفت، همچنان تا چه اندازه با اهداف خالق پروژه همسو بود. نظرات او در مورد توسعه بیت متناقض بود. در ای که در ماه مارس انجام شد، روند توسعه بیت را بی نظمی کنترل شده توصیف کرد ولی با این حال خاطرنشان کرد که هرجا لازم باشد حق تغییر یک جانبه برای او وساتوشی محفوظ است. در ماه آوریل اندریسن شروع به نظریه پردازی در مورد انواع سیاست هایی می کرد که فقط با ایجاد تغییرات اساسی در شبکه ممکن می شدن. پیشمینی می کرد روزی فقط سازمان های بزرگ به همه تراکنش توجه خواهند کرد. یعنی بازبینی و اعتبار سنجی تراکنش ها توسط کاربران انجام نمی شود و فقط سازمان های بزرگ این کار را انجام میدهند از نظر او ممکن بود روزی فرا برسد که پذیرندگان کارمز تراکنش شبکه را پرداخت کنند از نظر اندرسن مقیاس پذیری شبکه بیت به منظور انجام تراکنش های بیشتر موضوعی حتمی بود ولی زمان آن مشخص نبود ولی به نظر می رسید که او حاضر است بهای به رسیدن به این هدف را پرداخت کند. او در جایی می گوید، در حال حاضر من می توانم بیتکوین را رو بر روی کامپیوتر شخصیم اجرا کنم. ولی وقتی ظرفیت شبکه بیتکوین را افزایش دهیم، این کار دیگر امکانپذیر نخواهد بود. این افراد که امروز دوست دارند از کامپیوترهای خانگی خود برای اجرای نرم بیت بیتکوین استفاده کنند، ممکن است از اینکه در آینده مجبور باشند و افرادی اعتماد کنند که مسئول یکی از سرورهای قدرتمند هستند رضایت نداشته باشند. آخرین پیام معروف است که ارتباط بین ساتوشی و مشارکت کنندگان پروژه بیت کوین در روز 26 آوریل 2011 به کلی قطع می شود. طبق سوابقی که توسط اندرسن ارائه شده ساتوشی در این روز ایمیلی برای وی ارسال و در آن با لحنی آرام و گلمن از او به عنوان مسئول فنی جدید درخواست می کند که ساتوشی را به عنوان یک چهره مرموز در سایه معرفی نکند ساتوشی در این ایمیل می نویسد مطبوعات این پروژه را تبدیل به پول رایج دزدان دریایی می کند. شما در عوض متن باز بودن این پروژه را مطرح کنید و اعتبار بیشتری به مشارکت کنندگان این پروژه بدهید این مسئله به آنها میدهد ساتوشی در ادامه و در یک پیام جداگانه یک کپی از کلید خصوصی مربوط به سیستم هوشدار بیت را برای او ارسال کرد. این کلید عملا کنترل هوشدارهای امنیتی بیت را به اندرسن می‌داد. اندرسن در پاسخ از های ساتوشی تشکر کرد و بدون فوت وقت موضوع مهمی را مطرح و ساتوشی را از قصد خود برای شرکت در کنفرانس سالانه فناوری‌های نوظهور برای سرویس اطلاعات آمریکا آگاه کرد. او در ادامه نوشت احمقانه است فکر کنیم حضور من موجب شود که آنها با بیتکوین آشنا شوند من فکر می کنم دیگر خیلی دیر شده و آنها همین الان هم از کوین خبر دارند اندریسن روز بعد این تصمیم خود را در انجمنهای گفتگوی کوین مطرح کرد این موضوع باعث شد افراد بسیار زیادی به اظهار نظر در این مورد بپردازند ولی دهندگانی مثل ولادیمیر ووندرلاند کریستین دکه و منی روزنفولد در کمال تعجب مخالفت چندانی با آن نکردند و حتی با این استدلال که تعامل آزاد با نهادهای دولتی یک تغییر مطلوب است از آن حمایت میکردند کاربران بیت کوین هم درباره اقدامهای انجسه بحث و گفتگو میکردند اما در اینجا هم مشاهده میکنیم که تصمیم وی برای روبرو شدن با نهادهای دولتی مورد استقبال عموم قرار گرفت به نظر می اندرسن بر خلاف ساتوشی که اغلب سکوت اختیار می کرد، موجب جا افتادن لحن قاعد منتری در مدیریت پروژه شود. فرد ناشناسی نوشت این اتفاقات ثابت می کند که بیتکوین بر شایست سالاری بنا شده و گوین سمت توسعه دهنده اصلی پروژه را با توجه به شایستگی های خود و انتخاب همکارانش به آورده است. دیگران استدلال می‌کردند که ساتوشی گوین را ارتقای درجه داده تا زمام امور را به دست بگیرد و از نظر آنها اضافه شدن ایمیل او به سایت bitcoin.org دلیلی بر این ادعا بود. برخی معتقد بودند که اندریسن انتخاب نشد بلکه خودش شخصا برای انجام کارها پیش قدم شده بود. اظهار نظر رایجی که تا امروز هم به قوت خود باقی است. با این حال همانطور که از بحث و گفتگوها پیداست افراد انگشت شماری نگران این بودند که شاید ساتوشی هرگز باز نگردد. کیبا: گوین آیا ساتوشی به پروژه باز میگردد؟ بلومت: آخرین خبری که از او داریم این است که او به پروژه های دیگری مشغول شده و اینکه بیت کوین دست افراد درستی است. کیبا: خب آیا بیانیه رسمی وجود دارد؟ گوین اندریسن من نمیدانم او میگوید که میخواهد بر روی چیزهای دیگری کار کند. بنابراین انتظار می‌رود حضور او حتی کم تر از گذشته شود. بازگشت به نقطه اول. ساتوشی آهسته آهسته به یک معمای حل نشده تبدیل می‌شد، عموم مردم داشتن برای اولین بار از بیتکوین اطلاع پیدا می‌کردند. و قیمت آن در روزهای آخر ماه آوریل از 3 دلار عبور کرده بود. از زمانی که بیت بالای یک دلار معامله میشد، مطبوعات به سراغ آن آمدند و خبرنگاران به دنبال چهره ای می میگشتند که آن را به نام این پروژه پیوند بزنند. مجله فوربس، گوین و تیم مخفی سایفر پانک های او را به عنوان چهره اصلی بیت معرفی کرد، در حالی که از ساتوشی در پاورقی مقاله نام برده شده بود. اما همینطور که علاقه مردم به پروژه بیت کوین افسایش خالق آن نیز با کسی که برای تعریف داستان او در پروژه باقی مانده بود بیشتر گره می‌خورد. می می‌گفت من هرگز ساتوشی ناکاموتو را ملاقات نکردم. من هرگز تلفنی با او صحبت نکردم. ولی علاوه بر این صحبت‌ها داستان‌ها برای وایات مختلفی ساخته می‌شدند. در واقع این خود اندریسن بود که بعداً برای اولین بار در یک شوی ویدیویی در یوتیوب ناپدید شدن ساتوشی را به رویداد اداره اطلاعات آمریکا ارتباط داد. افسانه های جدیدی از این دانه ها قد کشیدند. روایت گوین خوش‌ذات بتمن بیت کوین، حامی خاموش بیت کوین، بیچون و چرای بیت کوین که حسن نیت او موجب جلب اعتماد کاربران شده است. به اندازه افسانه ساتوشی گمنام ماندگار بود. این افسانه کجا به پایان می رسید و روایت بعدی از کجا شروع می شد. گوین معنی خود را از ساتوشی می گرفت و ساتوشی به نوبه خود با ناپدید شدنش تعریف می شد. خبرنگاران با گذشت زمان پرسشهایشان را با لحنی آرام و حوزدنگیز از او میپرسیدند. خبرنگار مجله نیویورکر پرسید، میخواهم در مورد ساتوشی ناکاماتو بیشتر بدانم. اندریسن در حالی که به طرز تأصف و باورپذیری میخندید گفت من هم همینطور